بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سبوا من ذكرى أسكار السفتوحة نموس عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية ودى الرواية هنيهة فقلت بأبي وأمي يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعت بين المشرق والمغرب اللهم نفخني من الخطايا كما ينفخ الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة بين التكبير تكبير الأحرام وبين القراءة قراءة سورة فاتحة إسكاتة سكوتي ميكال. سكوت مثال سكوت مثال يعني هارفين مجاز شيء زي الموقف لا سكوت منزور عدا السخانيس بل ك منزور صداشو ما نمیشنیدیم یعنی صداشو پایین میورد به طور کسی نشنوه رسول صلی الله علیه وسلم در اون سکوت یعنی در اون جایی که سخنش ما نمیشنیدیم چی میگفتن؟ اللهم بعد بینی و بین خطایه این دعا را میخوندن در نماز، نماز فرض یعنی من از عمد این، از کار رو به این ترتیب بوردم این از کار در نماز فرض وارد شده بیشتر علمان میگن در نماز فرض این ذکر که چون سهابیه رسول رسولان داره نماز میخونه که میگه که چرا خب ساکت شده اینجا بعد الله میگه این ذکر رو میگم و در وعده همینطور هم اینطور برخلاف کسانی که او را مقید کردند به نماز شب کالامیاد بحثش الله اینها از کاری ای که در نماز فرض علی خصوص اومده قال احسبه قال هنیتا اصلش از هست وقت کوتاهی یعنی وقت کوتاهی رسول الله صلی الله سخن نمیگفتن اینیک سخنش ما نمیشنیدیم. فقلت بأبي وأمي يا رسول فدرم وما يا رسول فدايت فدو فدويت بود فدويت فدرم وما يا رسول الله اسكاتك بين التكبير وقراءة ما تقول بين تكبيرات الإحرام وقرات السرية فتح الشميجي والبوذيح الرسول سلم دعاء السفط أحرام دعاء السفط إن دعاء رامي قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعد دوریه بار ها همونطور که بین مشرق زمین و مغرب زمین فاصله گذاشتی مغرب یه طرف مشرق یه طرف بین من و بین گناهان فاصله بنداز نزدیک که گناه نشم این توفیق را به من بده بار که از گناهان دورو ببرزم این یک معناش یک معناش و معناه دیگر بار الله گناهان را از من دور بساز جدا کن همونطور که بین مشرق و مغرب جدا کردی فاصله انداختی گناهان من را محو پاک بکن بین من و گناهان فاصله بنداز از من دورش بکن اون گناهان رو از من پاکش بکن این معنای دومه این دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم هر جن که هر دو تا وارده بُعد و دوری باره الله است هر گونه گناهی هم که بین مشرق و مغرب فاصله انداختی بین من و گناهان نه نزدیکش بشم و اگرم انجام دادم از من پاکش بکن باره الله ها. اللهم بعد بيني وبين خطاياي خطا هست اشتباهه کار نادرسته گناه معصیت باره ها هر گونه گناهی که من مرتکب شده از من پاکش بکن محوش بکن این عبودیت بندگی اقرار به بندگی اقرار به اشتباه و تقصیر شرط در قبول دعا استجابت دعا این که انسان اقرار بکنه به کوتاهیش اقرار بکنه به کوتاهیش ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. او كما قال عليه الصلاه والسلام الله دعاء از قلب غافل و مشغول قبول نمیکنه باید تو بدونی چی داری دعا میکنی چی از الله میطلبی بارلا خطا و اشتباهات من گناهان و من مرا از من پاک بساز بین من و اونها فاصله بینداز چنانچه بین مشرق و مغرب فاصله انداختی اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني أسل تنقية باكي نقا باكي نقني من الخطايا بعد فازو ميجي اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد شيخ البني رحمه الله دوت كلمه وزياده تكرار ميكردن التصفية والتربيه ان دو تواجد دو كلمه را شما در اين حديث شما داريد ولي بسلاح ديگر تنقية وتخصيل غسل و پاکسازیش اول نقاه هست پاکسازیه گفته میشه اتخلیه قبل اتحلیه. اتخلیه التخلیه قبل اتحلیه. اتخلیه التخلیه او تنقیه یک لباسی کسیف میشه گلی روش اومده میخوای خوب پاکش بکنی اول اون گلا رو جدا کن بعد که اون گله را جدا کردی بعد تو آبش بزن بشورش درسته؟ یا اینکه با گل میخوای تو آبش بزنی اون آب پاک میکنه پیرانه گلالود میشه درسته پس اول باید اون ناپاکی ها را جدا بکنید از لباسات گلی پاشیده شده روی لباسات با گل توی آب نمیزنند بس اول تنقیه پاکی تحلیه تخلیه اول باید پاکش بکنی اللهم نقنی من الخطایا نقا پاکیه نقنی من خطایا اعترافی گفتن به گناه تقصیر همون طور که آدم و اقراره به گناه کرد ربنا ظلمنا شرط استجابت دعا اقرار اعتراف همونطور که ذنون یونس علیه السلام اقرار کرده به اشتباه و تقصیرش لا اله الا الله سبحانك انی کنت من الظالمین اس بوت ظلم خطا هست. من مقصرم به درگاهت چون من مقصرم پس این گناه را از من اول فاصله بنداز بین من و اون گناه دوم بارالله از من پاکش بکن همونطور که لباس سفید را از ناپاکی از چرک از کثیفی پاکش میکنیم همونطور بارالله ها گناهان من را از من پاک کن همونطور که تن انسان آراسته میشه با پاکی قلب انسانم نیاز به پاکی داره. پس بار الله ها گناهان ما را از ما بزداغ و پاکش کن. اللهم اغسلني من خطایای به الثلج والمائی والبرج. اللهم اغسلني من خطاياي. گفتیم اول تخلیه و بعد تحلیه. اول گلها را جدا کن بعد بشور لباست. شستن اینجا اومد. اللهم اغسلني. همون حرفی که آلونی تصفیه بعدن تربیه. اول انسان باید خودش از آلودگی گناه و معصیت و بدعت شرک اول وقت خودشو پاک بکنه و بعد خودشو آراسته بکنه توفیق میخواد اگر میخوای طالب علم باشی اون طالب علمی که ملائکه براش استغفار میگن و مائیها در دریا پرندگان در آسمان از گناه دوری کن از گناه دوری نکردی محروم میشی از این فضیلت از این مقام از این منزلت و جایگاه محروم میشی علم نوره نور با تاریکی و گناه و معصیت با هم دیگه در یک قلب جمع نمیشن اگر میخواید تو روشن بشه نوراني بشاء الله ويك بيتي هست منسوب بشافيه رحمه الله هل چنك برش ايرادها غرفته شده شكوته الى وكية عن سوء حفظي فرشدن الى ترك المعاصي فقال ان العلم نور ونور الله لا يعطى عاصي شكاعت كادن بباكية شيخ شمي شكاعت كادن السوء حفظه يكي بانو ارشاد كادن بترك گناهان وقفتن كفرشدن الى ترك المعاصي منو ارشاد كادن بدوري از گناه جنوه چون گناهان تاريكيان كدر مقابلون ت میره و از اون نور انسان محروم میشه با اون گناه بس مهمه انسان از گناه دوری ببرزه و از الله بخواهد که او را دور بکنه از گناه و اگر گناهی مرتکب شده اگر گناهی مرتکب شده الله ازش محبش بکنه بخاطر همین اون معنای اللهم باعد بینی و بین اون معنا رو تاکید میکنه بار الله من از گناه فاصله بنداز و بعد اگر گناهی مرتکب شدم بار از من محوش بکن و نقینی من الخطایا درست؟ و بعدش هم بار الها بعد از اینکه این گناه ها رو از من محو کردی مرا بشور با اون ایمان اینجا تشبیه شده پاکی و گوارایی ایمان به یخ و برف و آب و تگرگ هر چرکی با صابون پاک نمیشه هر آلودگی با صابون پاک نمیشه هر آلودگی با آب گرم پاک نمیشه خونی رو لباست می‌ریزه آب گرم رنگ و بعضی از رنگ ها یا بعضی از آلودگی ها را رقیق میکنه سبب میشه که لکه بذاره روی اون بر برخلاف آب سرد برخلاف یخ بعضی از چرکها هستن بعضی از آلودگیا هستن با آب یخ فقط پاک میشن خصوصا اون آب باران، سلج و برد که اینجا مثال زده شده اون یخ و تگرب و برف که آب مقطر دیگه هیچ نوع ناخالصی نداره این آب مقطر بهترین پاک کننده بهترین پاک کننده این یک وجه تفسیریش که علما گفتن اللهم مغسلنی من خطاياي راه ها مرا بشور و پاک کن از تمامی گناهام با یخ و آب و تگر خصللی من خطاياي یا بهفلجی وال و گفته شده خطا و اشتباه چون حاصلش حقوبت الهی و جهنمه آتش جهنمی به منزلت اون قرار داده شده. اشتباه و خطا حقت جهنم آتش جهمه. آتش جهنم, جهنم رو چی خونسا میکنه چه پاک می کنه؟ چی سردش میکنه. آب. یخ تگرگ از این باب میگه که برای محوش برای نابودی اون خطاها بعد از پاک سازیش انسان شایسته است از الله بخواهد که اون گرمای گناه را پاک بکنه خاموش بکنه الله جل شنه با آب و یخ و تگرگ در این حدیث در این دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم اشارهیه به نیاز ما به شستشو طور که لباس ما جامعه ما نیاز به شستن داره که پاک و تمیز باشه قلب ما از باب اولا نیاز به شستن و پاکیزگی دارد قلب‌های ما و لباس التقوا ذلك خیر اگر لباس تن ما جامه تن ما نیاز به شستن و نیاز به پاکسازی داره که پاک بشه این اشاره هست از الله عثان به ما که قلب تو ای مؤمن از باب اولا مستحق اون آب اون یخ اون تگرگ برای پاک شدن اگر این لباست برای پاکیش نیاز به صابون آب داری اون قلب هم این مؤمن نیاز داره و پاکیش هم جز با ایمان و علم نیست با ایمان علمه که میتونی اون قلبت را آراسته بکنی پاک بسازی و از الله یاری به طلبی که این در توفیق را برات باز بکنه محرومه اون شخصی که از این در محروم بشه از این خیر محروم بشه نتونه قلب توفیق این را پیدا نکنه که قلب خودش را پاک بکنه این نهایت محرومیته چی میخواد بکنه؟ با اون قلب پر از گناه اگر به ملاقات پروردگار بره در صحنه محشر حاضر بشه طور میخواد روی خودش رو بالا بیاره در اون روز محشر جلو به الله بیسته کسی که قلبش سیاهه چهرهش هم سیاهه یوم تطیب و وتسوّد الوجوه چهره های سفید هم چهره های سیاه و تاریک ال ان فی الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد قلب صالح بشه جسدت صورتت صالح میشه روشن میشه قلب تاریک شد، تو چهره تام تاریکه اس قلب ما نیاز به پاکی داره تا اینکه تن ما راسته و پاک بشه این حدیث ما را به یاد اون روز میندازه که انسان آماده بشه و خودش رو آماده بکنه که جلوه الله با رو سفیدی و قلبی صاف و پاک بیسته و گناهی به گردنش نباشه حقی از دیگران معصیتی خطایی در پرونده اعمالش نداشته باشه و الله ازش مح کرده باشه حدیث بعدی حدیث وجهد عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني إلى أحسن الأخلاق واهدني إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فضي يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت استغفرك وأتوب إليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة نس حدید دستهی مسلمه انه اذا قام الى صلاح وقتی که به هنگام یا هنگام میکره صلاح به نماز بیستاد نماز نافله نیمده نماز شب نیمده چی نست روایت؟ به نماز بیستاد و در روایتی انه کان اذا قام الى المکتوبه الى المکتوبه نماز فرز پنجگانه نماز فرزي که مکتوب بر انسان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم این دعا را میگفتن می موجهت و وجه تو وجه ای اخلصت و دینی و عملی اصل وجه سورته یعنی بار الله ها من متوجهم فقط به سوی تو وجهم سورتم روی من فقط به طرف توست چه در دینم و چه در دنيام. دنیام از تو می فقط از تو می و در دینم فقط از تو پیروی می کنم دینم و دنیام بار الله ها من متوجه تو هم از تو یاری متوجه تو هم نیازمند توام، محتاج توام، عبادت بندگی و بندگیه. تو وجهی چهرم روی من را بار الله به سوی تو قرار دادم، روی خودم را به سوی تو قرار دادم. نیازمندی خودم را دارم به تو میگم، متوجهم به سوی تو بار الله مقصودم توی در عبادتم، توجه من به سوی تو تقاضای من، طلب من، نیازمندی من بار الله فقط از از توست. و اجهد و وجهه للذي فطر السماوات للذی فطر السماوات و اینی خلق السماوات ولی اون کسی که فطر السماوات يعني خالق و مدبر کونه کسی که آسمانها و زمین را آفریده آسمانها و زمین وجودی نداشتند الله اونها را به وجود دارده از نیست نبودن كان الله ولم لم قبله وش الله بود و هیچ مخلوقی نبود الله یز هیچ از عدم آسمان را به وجود ورد از عدم زمین را به وجود خالقه بار الله مقصودم تویی که خالق آسمان ها و زمینی و منم جزی از این آسمان و زمین من به سوی خالق آفرینش رو آوردم روی من به سوی خالق جهان آفریننده عالمه توجه هم فقط به سوی اوست از او توجیه میخوام از او هدایت میخوام از او توفیق میخوام یعنی این دعا انسان میگه وقتی که جلوه الله میسته و نیازمندیش را به درگاه الهی اقرار میکنه برالله من متوجه تو هم در این دعا در این خاصه در این عبادت در این راز و نیاز خالصانه فقط تو را مقصود خودم قرار دادم فقط روی من به توی توست نه مخلوق دیگر همه مخلوقن و تو خالق جلوب خالق آفرینش استادم آفریننده عالم استادم فقط از او توجیح میخوام فقط از او هدایت میخوام فقط از او توفیق میخوام حنیفن حنیف اصل حنیفیت دیانت ابراهیمیه میل از هر شرکی میل از هر بدعتی میل از هر گناهی ابراهیم خلیل و الرحمن اون مقام خله بهش رسید به خاطر میلش و دوریش از هر گونه معصیت و گناه و بدعتی عبادتش خالصانه برای الله بود طاعتش خالصانه برای الله بود بنده مطیق الهی بود کمال اطاعت رو داشت اگر ما در زندگی خودمون بارها و بارها تابع هوای نفسمون تابع شیطان شدیم ولی ابراهیم خلیل الرحمن چنین نبود حنیف بود الله داره میگه حنیفه ابراهیم خلیل الرحمن حنیف بود و از ما هم میخواد که در دعایمون بخواهیم همچون ابراهیم حنیف باشیم مایل باشیم دور باشیم از هر گونه شرکی هر گونه معصیتی هر گونه خطایی هر گونه آلودگی و زشتی و بدی متوجه تو شدم بار الها که تو خالق آفریننده جهانی بین که مرا حنیف قرار بدی جهت وجه الذي فطر السماوات والارض و ما انا من المشرکین گفته شده در معنای حنیف مستقیم مائل به سوی حق یعنی کسی که دور شده از ناحق به سوی حق و به خاطر همین از باب تاکید اینجا رسول الله صلی بعد از حنیف میاد میگه و حنیفا وما انا من المشرکین حنیف بالله یعنی خاصمون اینه که ما حنیف باشیم مستقیم باشیم بر روی حق به سوی حق دور از عمل کرد مشرکین دور از رفتار مشرکین کردار مشرکین عمل مشرکین و ما انا من المشرکین تاکیده توضیح معنای حنیفیت حنیفیت یعنی دوری از هر گونه اشراکی به الله جلد شنه میل و دوری از هر گونه اشراک چه اشتراک اون شرک هوای نفسمون باشه که شریک دستورات الهی قرار بدین و چه میخواهد اون شرک پرسش غیر از الله باشه و یا اطاعت پیروی از ابلیس باشه یا اطاعت از مخلوقی از مخلوقات باشه نباید در اطاعت و فرمون از الله کسی را شریک الله الله گفت حرام چشم حسان دوری ببرزه دست بگشه الله گفت حرام نباید تابع هوای نفسش بشه این عبودیت این بندگیه این حنیفیت که الله از ما میخواد اسباب وسائل انحراف میل از حق دار نبسوی حق زیاده انستگرام بگیر، فیسبوکش بگیر، نبیدنم تلگرامش بگیر، واتسابش بگیر میل از حقه، نه سوی حق از تلویزیون مهواره است، کوچه و خیابانه، بازار مغازه است زنای بدحجاب، بیحجاب، ما هم هوای نفس داریم به جایی که بسوی حق روی بیاریم، بسوی ناحق میریم خصوصا من اینجا گوش زد همونطور همون تو که رسوله الله علیه علیہ وسلم ما را یادآور و را گوش زد کردن و این العین تزنی و زناه النظر و این العذون تزنی و زناه الزمن وای بر ما والله کوتاهی در چشم کنیم و در دیدنمون بدترین شر مفسدترین عمل ناشایستی که سبب برباد رفتن اعمال نیکمون میشه ایمان و تقوامون میشه علم و محرومیت از اون میشه و هدایتمون محسیت چشمه. اول چشم بعد گوشه در فساد و شره چشمت باز شد به معصیت الهی چشمت باز شد به معصیت الهی اون عکس اون فیلم اون دختر بی حجابه عکسش آینه قلبت شد وارد قلبت شد انگار که نگاه آینه می‌کنی انگار که اون دختر جلوته نگاهش می‌کنی محبت شهوت اون جنس مخالفی که الله شهوت را در دلت نسبت به اون قرار داده وقتی که بیاد جایگزین محبت الهی میشه به مقدار میلت به مقدار اون انحرافت به مقدار اون شهوتت اون محبت الهی در قلبت کاسته میشه اون حب الهی اون حنیفیت ابراهیمی که الله ستایشش میکنه بر اون حنیفیتش در قلبت اون میل بسوی حق از ناحق اون میلی که الله از خاصه که سبب ایجاد تقوا میشه ضعیف میشه تسعیف میشه کاسته میشه تاریکی میاد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم گناه با اندک گناهی نقطه سیاهی بر قلبت زده میشه و این نقطه ها زیاد میشن تا اینکه قلبت کامل سیاه بشه معصیت او رو کم نشمر والله که همینش نشمر همون عکسی که تو فضای مجازی هست همون چهره هست به مقداری که شهوت تو برانگیخته میشه و دلت به سوی اون عکس اون فیلمی میره به همون مقدار از محبت الله در قلبت و تقوایش کاسته میشه محروم میشه از لذت ایمان از لذت نماز از لذت خشوع شما گفتیم هدفمون از این اذکار اینی که در نماز خاشع باشیم و به فلاح و رستگاری برسیم هدف لح المؤمنون چه مؤمنینی اونایی که در نمازشون خاشع این خشوع خود چطور بهش برسیم اون رستگاری چطور میخوام به اون خشوع برسیم در صورتی که اسباب خشور را فراهم نکردیم بلکه ضدش را فراهم کردیم از نگاه نا اون نگاهه سبب میشه که چی والفرج یصدق ذلك کله او یکذب او كما قال علیه الصلاه والسلام چشم زنا میکنه زناش دیدن گوش زنا میکنه شنیدن دستم زناش لمسه و آخرش میرسه مرتبه بالاتر والفرج صدق و ذلك کله او یکذب فرج انسان یا تصیغ میت یا رو وادار میکنه که زنا بیفته یا اینکه نه آخرش به شرولاهت میرسه وای بر تو اگر در اون کبیره که از موبقات درش بیفتیم بس معاذب عمالمون کردارمون باشیم اگر میخوایم از توفیق علم توفیق هدایت محروم نشیم و درهایش بر ما بسته نشه معاذبت داشته باشیم بر اون اعضا و جوارحی که الله در اختیار ما قرار داده ازش خوب محافظت و معاذبت بکنیم نزاریم که در گناه بیفتند نظاریم که در گناه بیفتند دستت نزار در گناه بیفته چشمت نزار تو مسئولی در مقابلش چشمت مسئولی در مقابلش نزار در حرام بیفته مسئولی روز قیامت همین چشم جلوی الله میسترا گواه میده بر علیه و قالوا للجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء دست گواه میده گوشت میده و قالوا للجلودهم لما شهدتم ب دست و پوستش گوشش و چشمش میگه چرا گواه دادی بر علیه ما قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء که النطق بر زبانت جاری کرد این نطق رو بر ماهم هم که ما این سخن بگیم و اعتراف بکنیم به اون گناهان و معاصی و خطاهایی که انجام دادیم اعتراف ميكنن جلو الله چشمه اعتراف ميكنه گوش اعتراف ميكنه جره الله بود بي غير از اون پرونده اعمالمون سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله والحمد لله الله عليه محمد وعلى اله محمد